أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أكل قوقلوانشهد إنك لرسول الله که يعلم إنك لرسوله الله با رحمت است انگامی که منافقان نزد تو آیند گویند شهادت می دهیم که تو پیامبر خدا هستی خدا می داند که تو پیامبرش هستی اما خداوند شهادت می دهد که منافقان دروغ گویند آنها قسمهایشان را سپر کردند و مردم را از راه نجات بخش الهی باز می دادن. آنها عمل بد و پلید است. این بدان خاطر است که آنها ایمان آوردند و سپس کافر شدند در نتیجه قلبهایشان از درک حقایق عاجز شد و آنها هیچ حقیقتی را درک نمی‌کنند هنگامی که آنها را می‌بینی پیکان‌هایشان تو را به تعجب وامی‌دارد و چون چه سخن بگویند و تو به سخنانشان گوش فرادهی خواهی دید که آنها چوبهای خوشگی که به دیوار تکیه داده هند. هر فریادی را علی خود میپندارند. آنها دشمنان تو هستند پس از آنها حذر کن خدا بکشدشان که چگونه از حق منحرف می شود. و هنگامی که به آنها گفته شود بیایید تا پیامبر برایتان طلب آموردش کند سرهایشان را از روی غرور تکان می دهند می بینی که آنها از حق روی برمیگردانند و تکبر می کنند. چه برای آنها استفار کنی و چه نکنی هر دو یکسان است خداوند هرگز آنها را نمی زیرا خداوند بزرگ فاسقان را به راه نجات هدایت نمی کند آنها همان کسانی هستند که میگویند گویند به اطرافیان پیامبر خدا چیزی ندهید تا اینکه از پیرامون او پراکنده شوند. حالان که خزائن آسمان ها و زمین از آن خداست، اما منافقان درک نمی کنند ولی لا می اگر به مدینه بازگردیم صاحبان عزت زلیلان را از آنجا بیرون می کند حالان که تمام عزت از آن خدا و برش و اهل ایمان است، اما منافقان نمی‌فهمند. ای اهل ایمان مراقب باشید که پرداختن به انبال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند زیرا کسی که اینگونه رفتار کند بیشک از زیانکاران است. از آن چه روزیتان کردیم دیگران را بهره مند قبل از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد که خواهد گفت پروردگارا چرا مرگ مرا کمی به تأخیر نینداختی تا صدقه دهم و از نیگواران باشم هنگامی که عجل کسی فرا رسد خداوند هرگز مرگ او را به تأخیر نمیاندازد بدانید خداوند به عملکردتان آگاه است الله نَفْسٍ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ قرسی قرآنی پیامبر مهر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم